درود بر همیانان ارجمند، بینندگان برنامه آنلاین و شنوندگان این برنامه از طریق تلویزیون کانال یک و همچنین رادیو صدای ایران. شایین نجات هستم امروز با گفتاری درباره تفاوت‌های تفاوتهای شهریاری ایرانی، سلطنت اسلامی و پادشاهی پارلمانی اروپایی بحثی رو مطرح میکنم امیدوارم که این در حقیقت پیش درآمد یک زمینه ایجاد بکنه برای کسانی که علاقه من هستند بتوانند با مطالعه بیشتر روی متون بیشتر این سه پدیده را از هم متمایز کنند که بویژه شهریاری یا پادشاهی ایرانی با سلطنت دوره اسلامی ایران تفاوتهای بسیار بسیار چشمگیری داره همچنان که دارای تفاوت‌هایی هم با نظام پادشاهی پارلمانی در اروپا هم هست که امروز به چند فرازی از اون من اشاره میکنم اینکه چرا اصلا, اصلا این بحث مطرح میشه به خاطر این هست که این تفاوت در این سه پدیده یعنی شهریاری ایرانی سلطنت اسلامی و پادشاهی پارلمانی در حقیقت تفاوت در اندیشه سیاسی سه تیف یا سه جریان خیلی پررنگ در تاریخ ایرانه شهریاری ایرانی در حقیقت آبشخورش اندیشه سیاسی ایران شهری است سلطنت اسلامی آبشخورش آمیخته ای از سنت ترکی مغولی حکومت با مسئله مشروعیت حکومت توسط تایید خلیفه اسلامی است یا امیرالمومنین و پادشاهی پارلمانی هم ریشه در سنت داره در اروپا که میکوشم در گفتار امروز به نها بپردازم فکر می کنم بد نباشه که بشود یه مقداری گام به گام سراغ این مباحث رفت و بهش پرداخت بخوستم که ببینیم که در این درباره این سه پدیده این شهریاری ایرانی سلطنت و پادشاهی پارلمانی کجا و کی این پدیده ها دیده شدند و در حقیقت در متن جامعه قرار گرفتند در مود شهریاری ایرانی ما به طور مشخص به ایران پیش از اسلام اشاره می کنیم در دوره است که شما نظام حکومتی برامده از این شهریاری ایرانی رو می بینید که تو تاریخ مدون در حال تاریخ کلاسیک به صورت اخامنشیان سپس اشکانیان و ساسانیان جلوه شده ولی در حقیقت در تاریخ, حماسی در تاریخ حماسی ما هم در ایران که در شاهنامه خیلی آشکارا به چشمی خوره دوره کیانیان هم در برگیرنده شهریاری ایرانی و آبشخور اصلی این نوع نظام سیاسی یعنی اندیشه سیاسی ایران است سلطنت که پدیده ایست که بر به دوره اسلامی تاریخ ایران از تقریبا ورود ترکان به ایران تا انقلاب مشروطه در ایران در جریان بوده ورود ترکان رو به ایران خب ما از دوره تقریبا سامانیان میدونیم به طور مشخص ولی هنگامی که ترکان به قدرت میرسند میشود آن را تقریبا همزمان با آغاز قزنویان یعنی سلطان محمود قزنوی دانست در نتیجه چیزی حدود هزار سال پیش آغاز شده و تا انقلاب مشروطه هم، یعنی تا چیزی حدود فرض کنید. سد ده سال پیش در جریان بوده و تاثیرات خیلی زیادی بر سیاست در ایران گذاشته. پادشاهی پارلمانی که به صورت مدرن از نظامهای پادشاهی اروپایی است و شما تو دو سه صده گذاشته، می توانید در کشور های مثل انگلستان، هلند، نروژ، سوئد، دانمارک و یه مقدار اخیرتر در کشور مثل ژاپن و اسپانیا و تایلند هم ببینید بنابراین مکان ها و زمان که این سه نظام دیده شدن مشخص میشه شهریاری ایرانی، ایران پیش از اسلام، سلطنت، ایران پس از اسلام ولی به مشخص از ورود عمده ترکان و به قدرت رسیدن ترکان در فلات ایران تا انقلاب مشروطه و پادشاهی پارلمانی در نظام اروپایی حالا هر کدوم از این سه پدیده که در این سه دوره مشخص توانستند خودشون نشون بدن و در حقیقت نظام سیاسی حاکم بر کشور باشند یا کشورهایی باشند از کجا حقانیت یا مشروعیت یا به قول انگلیسی ها لجتمیسیشون رو میگیرند حقانیت در ایران پیش از اسلام از پدیده یا کانسپت یا فرایافت یا مفهومی به نام فر میاد تو یکی از برنامه ها من کشته بودم فر رو آن چیزی که واقعا از توی متون برمیاد رو به عنوان معنای فر با همیهنان در میون بگذارم در مورد مفهوم فر به ویژه تا مقرزین و ایران ستیزان تبلیغات بسیار سوی شده بوده فر رو ما به کسی که حقانیت فرمانروایی و حکومت داره رو موقعی صاحب فر یا فرهمند میدونیم بر اساس متون خدمتون میگم که دارای خرد و دادگر باشه کسی که خردمنده و کسی که دادگره این فرد صاحب فر هست و کسی که صاحب فر یا فرهمنده مردم باید ازش پشتیبانی کنند و از فرمان روایی اون پیروی نمایند یک جا بودن خرد و داد در یک نهاد یا یک در, در یک چهره اون رو برای حقانیت نزد مردم در حقیقت موجه میکنه این در مورد شهریاری ایرانی است در مورد سلطنت حقانیت این پدیده از خلیفه خلیفه مسلمان و یا قدرت ایلات و قبایل میامده به این صورت که شما فرض می‌کنید سلجوقیان وارد فرات ایران میشن به مرور می توانند غزنویان رو پس بزنن، قدرت رو قبضه کنند یعنی در حقیقت یک تبار ترکی تبار ترک دیگر رو سرکوب می‌کنه و قدرتو می‌گیره و بعد اینها هم مارند غزنویان میآیند و میروند سراغ خلیفه و از خلیفه تاییدیه میخوان. امیرالمومنین در بغداد برای اینها در حقیقت فرمان صادر میکنه اینها رو تایید میکنه و با تایید اونها اینها به مردمی که در ایران دارن زندگی میکنن که خب اون موقع دیگه وقتی بزرگی از اونها مسلمانند دارن سند مشروعیت خودشونو نشون میدن سند حقانیت خودشونو نشون میدن و با اون حکم خلیفه فرمان روایی نظامی خودشون رو در حقیقت تبدیل به یک فرمان روایی سیاسی میکنن که شرع یا دین هم پشتش قرار گرفته تایید خلیفه هم داره طبیعتا اگر قدرت ایلات و قبایل نبود اینا نمیتونستن اصلا قدرت سیاسی به دست بگیرن که بخواهن از خلیفه تایید بگیرن بنابراین مجموعه ای از تایید خلیفه اسلامی و قدرت جنگاوری و نظامی ایلات و قوایل شود آن چیزی که ما به عنوان پشوانه حقانیت سلطان در دوره اسلامی تاریخ ایران میبینیم در نظام های اروپایی پشوانه سنت برمیگرده به نوع و گونه اقتصاد در کشورهای اروپایی که اقتصاد, اقتصاد کشاورزی بوده، نظام نظام فئودالی بوده و در نظام فئودالی شما زمینداران و بزرگ دارید که اینا نسل اندر نسل صاحب زمین ها مراتع و امکانات بودند در بخش مختلف کشور صاحب ثروت بودند و به خاطر ثروتشون و به خاطر اصالت تاریخیشون صاحب نفوذ بودند. در نتیجه اینها می آمدند و شخصی رو که به عنوان شاه یا ملکه در کشور صاحب تاج و تخت بود و به طور مشروط پشتیبانی می‌کردن و در حقیقت یک همزیستی در کنار هم داشتند که زمینداران بزرگ حالا با عناوین مختلف لورد، دوک، کنت می‌آمدن از نظر مالی تحمیم می می‌کردن درباره پادشاهی رو در اروپا و در حقیقت در هنگام نبرد و جنگ هم نیروی نظامی تاییه میکردن واسه شاه و در قبال شاه و دربار اینها رو تایید میکردن میکوشیدن که با اینها در مورد مسائل مختلف مشورت کنن نظر اونها رو تحمیل میکنن در نچه این سنت فودالیزم در اروپا پشوانه نظام پادشاهی شد که بعدها این نظام ها عمدتاً صاحب پارلومان هم شدن و تبدیل پادشایی های پارلومانیه امروزی شدن خب ما در این سه مورد پس اومدیم گفتیم هر نوع نظام از کجا حقانیتشو میگیره شهریاری ایرانی از فر پدیده فر سلطنت از خلیفه مسلمان و قدرت قبایل و ایلها و پادشاهی پارلمانی که نمونه‌های اروپاییشو زیاد می‌بینیم در سنت سنت اروپا در حقیقت و نظام اقتصادی حاصل از شکل فئودالی در اروپا در حقیقت مشروعیتش رو می‌گیره درباره فرق که پشوانه حقانیت نظام شهریاری ایرانی است من معترضه دیگریام بی افسایم و این است که گفتم فرق یک جا گم شدن خردورزی و دادورزی در نزد یک نهاد یا یک چهره است هم شاهنامه هم متون دیگر ایرانی به طور خیلی پررنگی این ادعای من رو تایید میکنه. گرچه فر رو یک در حقیقت صفت خدا دادی می ولی این گونه نیست که هر کسی که تاج و تخت رو در اختیار داشته باشه صاحب فر و ناگزی باید ازش پیروبی کرد بلکه برعکس اگر کسی صاحب خرد و داد باشه در اون هنگام صاحب فره و قابل پشتیبانی و تعییده و اگر کسی صاحب تاج و تخت باشه ولی بی خردی کنه یا بیداد انجام بده در مدیریت امور کشور نه تنها نباید ازش پیروبی کرد بلکه باید در جهت سرنگونیش هم اقدام کرد تو این زمینه ما چند نمونه آشکارو رو خیلی برجسته در تاریخ ایران می‌بینیم حالا میخوام بپردازم نخست به تفاوت‌های عمده شهریاری و سلطنت از چند دیدگاه و پس از اون پس از بیان تفاوت شهریاری ایرانی و سلطنت اسلامی بروم به سراغ تفاوت تفاوت‌های برجسته شهریاری ایرانی و پادشاهی پارلمانی پس اکنون تفاوت شهریاری ایرانی و سلطنت از چند دیدگاه نخست از نظر واژهشناسی خوبه که این واجه ها رو باز کنیم سلطنت واژهی است عربی با سلطه و مسلط از یک ریشه هست طبیعتا به نهادی داره اطلاق میشه که چیره شده بر جامعه بر ستون اجتماع سواره و در حقیقت با قدرت خودشو تحمیل کرده به مردم و به کسانی که باید در اون محدوده جغرافیایی و سیاسی مشخص ازش به فرمانبری داشته باشه واژه شهریار یا شاه و پادشاه واژه‌ای است کاملا ایرانی برمیگرده به پارسی باستان و همچنین وقتی میشه در پهلوی هم اومده و از پهلوی هم به زبان فارسی موزی رسیده در حقیقت واژه اوستایی خشد و ریشه این واژست خشط را به معنای شهریاری نیکو و یا حکومت مطلوب در حقیقت این خشد که شهرم ازش اومده و شاهو، شهر و اینا همه از این واجه در حقیقت نشعت گرفته به معنای دولت حکومت و در حقیقت بنیاد کشوره. در نقش خود از شهریانی میشه صحبت از یک واژه بسیار اصیل و بسیار کهن هست که هم در پارسی باستان و هم در اوستایی این واژه نه یک بار چندین بار در متون مختلف دیده شده و در حقیقت یکی از اون امشااز که به صورت فرزا های احورا مزدا در اوستا هم ازش یادآور شده حالا بریم به تفاوت شهریاری و سطنت از دیدگاه دیگر یعنی دیدگاه قانون نگاه کنیم تفاوت بسیار مهم نیست یعنی در حقیقت قلب تفاوت شهریاری ایرانی و سلطنت اسلامی برمیگرده به مسئله قانونگذاری شهریار قانونگذار نیست شاه ایرانی قانونگذار نیست بلکه ناظر بر اجرای قانونه چه قانونی قانونی که برگرفته از عرفه قانونی که برگرفته از فرهنگ ملی است بنابراین عرف ایرانی که باید در جامعه جاری باشه که به موازات و همراستای فرهنگ عمومی مردمه شاه یا شهریار نظارگر بر اجرای درست این عرف که خودش پایه قانون شده در کشور ما در دوره ساسانیان که واپسین دوره شهریاری ایرانی است در ایران و تو اون چه سال, سال خوشبختانه اسناد و مدارک زیادی برای ما برجای مونده نصب دورهای دیگر تاریخ ایران از دوره ساسانیان ما خیلی بیشتر آگاهی داریم در اونجا میبینید که مسئله قانون اینقدر در کشور جا افتاده حالا به من یه داد داد به معنی قانون و دادگری یا قانونگذاری و رعایت قانون انقدر مطلب جا افتاده و پخته شده در ایران که شما میبینید واژه مثل شهروند در دوره ساسانیان به همین صورت به کار میاد شهروند است که در کشور داره زندگی میکنه چون شهر اونجا به معنای کشوره معنای کوهن شهر همچنان که گفتم به معنای کشوره شهروند یعنی کسی که عضویت کشور رو داره کسی که طبعه کشوره و اون از حقوقی برخورداره که این حقوق به نام حقوق شهروندی امروز هم ازش بایی وقتا یاد میکنیم در اونجا دیگه گفته نمیشه که این شهروند مسیحیست، است بوداییست، یهودیست این کنه مساعد عنوان نمیشه مسئله این است که شما شهروند ایران شهری و چون شهروند ایران شهری صاحب حقوقی هستی این برمیگده به قانون پذیر بودن جامعه در دوره ساسانیان یعنی شهریاری ایرانی نظارگر اجرای است که این قانون بر پایه عرف ای است و کسی که در چارچوب این قانون قرار میگیره و خودش رو بهش ملتظم میدونه و بهش عمل میکنه می شود شهروند ایران شهر در مورد سلطنت اسلامی کلن قضیه در جای دیگری جای میگیره سلطان در دوره اسلامی نه تنها خودش هر زمان که صلاح میدونسته قانون گذاری میکرده بلکه قانونی که خودشم میگذاشته رو خودشو ملزم به رعایتش نمیدونسته خیلی وقتا اصولا سلطان خودش رو بالاتر و فراتر از قانون میدونسته و چون پاس خوب به هیچ نهادی و به هیچ کسی نبوده طبیعتا هر آن چیزی که به عنوان قانون در کشور وزمی کرده خودش رو در چارچوب رعایت اون قانون نمی دونسته برخلاف شهریاری ایرانی که حتی خود شاه در دوره ساسانیان حتی دوره هرخامانیشان هم این گونه بود خودش رو می دید که اگر شاکی داشته باشه اگر کسی ازش شکایت بکنه در حضور داور بشینه، پاسخ خوب باشه و اگر خطایی کرده جبران کنه و جریمه بده تو دوره سلطنت اسلامی شما مطلقا همچه چیزی رو نمیبینید کسی اصلا شهامت شکاعت از سلطان رو نداره و اگر همچه هم رخ میداد به فرض یک سرانجام بسیار بد رو میشد برای اون فرد دید من برای این جنبندی میکنم شهریار شهریار ایرانی نه گذاری کرده نه فراتر از قانون بوده بلکه نظارگر بر اجرای قانون ملی بوده که این قانون برگرفته از عرف مردم بوده عرف کشور بوده در حالی که در نظام سلطنتی <تصفيق> که پس از اسلام از برود ترکان تا انقلاب مشروطه خودشون نشون داده سلطان فراتر از هر قانون و مقرراتی بوده به هیچ جا پاسخگو نبوده و در حقیقت دامنه هوا و هوسش بوده که می میتوانسته تصمیماتش رو درش در حقیقت بگیره و بهش عمل بکنه یا نکنه این عدم التزام به قانون کشور حتی به قانونی که خود این سلطان و حکومتش گذاشته یکی از دلایل بزرگ نبود امنیت در کشور نبود آزادی و نبود حتی پدیده مثل مالکیت خصوصی بوده که می شود در بحث دیگری بیشتر بهش پرداخت. تفاوت دیگر شهریار و سلطان از دیدگاه قانون مداری قابل بررسی است. گفتم <تصفح> که شهریار قانونگذار نبوده ولی در مقوله قانون مداری شهریار قانون مدار بوده یعنی دقیقاً تنبی به آن چیزی که قانون کشور بوده چه پیش از خودش چه اون چیزی که در زمان خودش تصریح شده بوده و باید می شده چه در حوزه دادگری چه در حوزه تسنیمات کشوری چه در حوزه مسائل اجتماعی شهریار ماند هر شهروند دیگری ناگزیر به قانون مداری بوده حالا این قانون هر چی بوده شاه موظف بوده که رایتش کنه از سوی دیگر سلطان یا سلطان دوره اسلامی اگر حتی قانونی هم بوده که این قانون قانون شر بوده، قانون پرفی جامعه بوده، پیش از اون وضع شده یا در زمان خودش این قانون چیده شده، پیشون میامده و بدون توجه به هیچ عرضشون بنیادی پشت پا میزده به همه قانونهایی که پیش از خودش بوده یا حتی زمان خودش وضع شده بوده و اصولا خودشو فراتر از این میدونستی که بخواد در یه چارچوب خودش رو محدود کنه برای همین می خیلی راحت سلطان دست میده سر ببارن، دست میده چش در بیارن، دست میده مردم جایی رو قتل بکنن و این مسئله شما در دوره اسلامی تاریخ ایران کم نمی بینید. من تو این دو زمینه فکر می کنم بد نباشه دو سه رو براتون بخونم که تا حدی با فضای این مسئله قانون مداری و قانون آشنا بشید میگوید من از اون کتاب خودم دو سه بخش رو انتخاب می کنم و می خونم و رفرنسش هم خدمتون میگم یکی از مطالب خیلی جالب چیزی است که اردشیر بابکان میگوید در جاویدان خرد، در جاویدان خرد اردشیر دشیر میگوید پادشاه به جای اینکه با وعده دادن و یا قلزت نمودن در خاموش کردن مردم بکوشد باید به دنبال اصلاح عیوب خیش باشد در جاویدان خرد شما این رو میتوانید در برگ 101 کتاب ابو علی مسکویه به کوشش بهروز ثروتیان ببینید خیلی جالبه که شهریار اینگونه از سوی اردشیر بابکان محدوده کارش تعریف میشه که باید به جای اینکه به مردم وعده بده یا قلزت کنه این کنه به مردم که مردم خاموش بشن و بترسن ازش حساب ببرن باید به دنبال اصلاح ایوب خودش باشه اگر شهریار یا نهاد فرمان روایی عیب و ایراد برطرف بکنه دلیل نداره که مردم بخواهن که نسبت بهش خش داشته باش شما یه همچین چیزی رو هیچ وقت در یک نظام سلطنتی نمیبینید این ویژگی نظام شهریاری ایرانی است دوباره متن می خونم اه... که خیلی جالبه از تجارب الامم از ابن مسکوی تجارب ابن مسکوی برگردان از دکتر علی نقی منزوی برگ یک خیلی جالب درباره حق مردم بر شهریار یا دولته میگوید حق مردم بر شهریار آن است که روزیشان به هنگام داد که مردم را پشوانهی و سودایی جز او نباشد حق مردم بر شهریار آن است که در کارشان نیک بینگرد با ایشان مهر ورزد بیش از توان بارشان نکند اگر گرفتار شوند و بهرهشان به آسیبی آسمانی یا زیانی زمینی کاستی پذیرد مثلا مثل خوشسالی و سیل و زمی و یخوندان و اینا به همان اندازه از مالیات بکاهد و اگر به پیش آمدی از دست دهند یاری کند مردم را تا بر آباد کردن توانا شوند. خیلی جالبه یعنی میگوید وظیفه شهریان یا دولت وظیفه آبادگریست باید برای رفاع حال مردم بکوشه بهشون مهر ببرزه و دولت یا شهریار یا نهاد شهریاری وظیفه دارن که هنگامی که آسیبه به مردم میرسه در اثر حالای اتفاق بقول خودشون آسمانی مثل خوشسالی، اخبندان، زمین لرزه سی بکوشه که به داد مردم برسه زندگی مردم رو تعمیم بکنه تا جایی که توانه و خواسته یا سربل در اختارشون بذاره که بت دوباره فعالیت‌های اقتصادی رو از سر بگیرن. شما یه همچین نگاه و مطلقا در مقوله سلطنت نمی بینید خیلی جالبه که من در دینکر یکی از متون پهلوی بر برپایه حالا بینی زرتشت یه گزاره خیلی زیبایی داره که میگوید، بنیاد آفرینش و دهش پروردگار بر این است استوار است که هر انسانی بر جان خیشتن شهریار است ببینید وقتی انسانی بر جان خیشتن شهریار باشه دیگه ای به نام سلطنت معنا نداره مسلط شدن و سلطه داشتن بر جان و روان انسانها مطلقا جایی در فرهنگ ایرانی نداره چرا؟ برای اینکه در لین کرد که یکی از متون ایران شهری می تواند به شمال بیاید میگوید هر انسانی و جان خیشتن شهریار است دیگه نکته جالب دیگری در جاویدان خرد هست که از فضیلت های شهریار یا دولت در اونجا یاد میشه این بخش منسوب به بهمن شاست میگوید پذیرش سخن تند زیردستان با شکیبایی و داری و همچنین بخشاینده بودن در هنگام داشتن قدرت از ویژگی های شهریار ها است. من مطمئنم که امروز روز ما این رو بینیم در پدیده به نام سرطمند و خیلی جالبه که من یادی کنم از گزنفون در کتاب سیروپدیاش یا تربیت کوروشش برمیگرده به این مطلب قانونگذاری و قانون مداری، از دیدگاه شهریاری گزنفوم گوید در دیار پارس خودکاویگی برپا نیست و دادگری که بر پایه برابری افراد در برابر قانونی باشد جاری است بعد از زبان مادر کوروش می‌افساید که پدر کوروش فرمانروایی را حق دولتی میدانست. دانست که دامنه قدرت آن هوس نیست بلکه قانون است گزنفون یونانی درباره نظام شهریاری در ایران میگوید که پدر کورش اعتقاد داشت که دامنه قدرت شهریار در ایران هوا و هوس نیست میل و سلیقه شخصی نیست بلکه قانونه برای این به همین توضیحاتی که خدمتتون دادم در مورد قانون و قانونمداری مداری در این جستار و تفاوتاش با سلطنت اسلامی. مرتبه دیگر برمیگرده به آبادگری، همچنان که از اون متن براتون خوندم و خیلی خیلی موارد دیگرش در کتاب خودم اندیشه سیاسی ایران شهری آوردم، وظیفه شهریار آبادگری است. وظیفه دولت یا نهاد شهریاری آبادگری است توسعه اقتصادی کشور توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی است ایجاد رفاه تامین در امنیت اقتصادی برای مردم و ساختن زندگی بهتر برای ملت این خیشگاری نهاد شهریاری می باشد که از دیدگاه سلطنت شما مطلقاً می همچین، وظیفه رو برای سلطان اسلامی متصور نبودید سلطان به هیچ روی کار آبادگری انجام نمیداد و خودشون موظف به این کار نمیدونست این نمونه‌های خیلی کمی استثنااتی رو ما می‌بینیم ولی به راستی نمونه‌های بسیار کمی هستند و برای همین جامعه ایران از آبادی و آبادگری اغلب افتاد شما امروز اگر که دو تا جهانگردو بخواید در ایران ببرید و بهش بناهای دیدنی ایران رو نشون بدید خب جاهایی مثل تخت جمشید و گنجنامه و پاسارگاد و نقش رستم و کعبه زرتوشنا که همش برمیگرده به دوره پیش از اسلام یعنی دوره‌ای که ما شهریاری در ایران داشتیم و در دوره اسلامی یعنی دوره طمن هزار سالش اگر از هزار سال پیش حساب کنیم پدیده سلطنت آغاز شده شما میبینید که ما غیر از یه دوره کوتاهی در زمان شاه شاهباز که در اصفهان بناهای آبرومندی ساخته شد دیگر میبینید که هیچ جای کشور بنایی نیست که ما بطوریم نشون بدیم به یک بیگانه و بگوییم که این ساختمون یا جاهای دیدنی کشور ماست تو این هزار سال گذشته. خیلی کم می‌بینید خشت روی خشت گذاشته باشن آبادانی ایجاد کرده باشن به کشاورزی و صنعت پرداخته باشن هر هنگام هم که زورشون رسید به خاطر مقاصد سیاسی تخریب کردن ویران کردن کشور رو در نتیجه یکی از بزرگترین تفاوت‌های شهریار ایرانی و سلطان اسلامی همین توجه به آبادگری و بی‌توجهی به آبادگری از سوی این دو نهاد و آخرین موردی که در این فهرست تفاوت‌های شهریاری و سلطنت می‌خوام با شما درمیون بذارم مسئله رایزنی با بزرگان شما اگه شاهنامه رو ورق بزنید و داستان‌ها رو ببینید بالای شاید چل مورد شما می‌بینید که شهریار یا شاه بزرگان رو احضار می‌کنه و رو مسائل مختلف از اونا نظر می‌خواد و در حقیقت نظر کارشناسی بزرگان و صاحب نظران رو اعمال میکنه تو تصمیمات کلان مملکتیش برخی زمانها حتی برای تصمیمات کوچکتر هم مشورت میکنه در حالی که شما در پیده سلطنت این رو نمیبینید یا بسیار کم میبینید اگر هم وزیری بوده که گاهی مورد مشورت قرار گرفته و خیرخواه کشور بوده شما میبینید که بلاهای عجیب و غریب سرش اومردن از دوره قزنویان بگیرید وزیری مثل فضل ابن احمد اسفراینی بیایید تا همین دوره سلجوگیان و خارسشاییان و بیایید دوره بعد از مغول و تا همین قاجار بلاهایی که سر قایم مقام فراهانی و امیرکبیر آوردند، آوردن نه تنها بزرگان رو اینا بر نمیتابیدن بلکه حتی وزیران خودشون رو که در احرار گرداننده اصلی کشور بودن رو هم پس از مدتی حسب فیزیکی می کردن. شما این روی که توابط های دیگر بسیار آشکار نظام شهریاری و سلطنت میبینید، شهریاری و شاهی که در ایران با نظر بزرگان همراه بوده و گام به گام نظرات کارشناسیو می گرفته. صاحب نظران رو نه یک بار چندی بار گرد هم می که بتون به نکیه برسه. در حالی که در زمینه پدید سلطنت خیلی به ندرت اینو می بینید. و اون هم تو مقاطع کوتاهی مثلا نادر هنگامی که در دشت مغان تصمیم میگیره که بزرگان کشور رو جمع بکنه و تعداد خیلی زیادی هزاران نفر رو به دشت مغان میاره در آذربایجان که تصمیم بگیرن باید برای کشور چه کنن چه نکنن خب اون کار کار جالب است با مشورت برای یا تشکیل به نوعی مجلس مؤسسان داره کار کشور جلو میبره ولی پس از مدتی میبینید که نادرشاه هم تبدیل به کسی میشه که مشورت و رایزنی رو کنار میگذاره و حرف و تصمیم میشه حرف و تصمیم خودش و میره تو همون رده سنت های دوره اسلامی تاریخ ایران و دور میشه از هر آنچه که میتوانست به صلاح و مسلحت هم کشور و هم خودش باشه پس از بیان پنج تفاوت عمده شهریاری ایرانی و سلطنت اسلامی میرم به سراغ دو تا تفاوت بزرگ شهریاری ایرانی و پادشاهی پارلمانی کشورهای اروپایی. تفاوت این دو تا خب مقداری کمتره تا تفاوت شهریاری ایرانی و سلطنت اسلامی ولی برحال تفاوت های بنیادی وجود داره که می اینجا با شما در درمیون بذارم. یک تفاوت شایسته سالاری در برابر مردم سالاری است. شهریاری ایرانی برپایه شایسته سالاری یا به معنای دقیق واژه همون پریستکراسی یا نخبگراهی است در حالی که پادشاهی پارلمانی در اروپا دسته کم تو صده بیستوم دیگه طور خیلی مشخصی تبدیل شد به نظام مردم سالار یا دموکراتیک. اینکه شایسته سالاری نظام درستی است یا مردم سالاری یا دموکراسی نظام درستی است اینو من در جوستارهای دیگه پیش پرداختم و برخی از ابعاد اینو کشیدم که براتون باز کنم فکر می کنم باز هم در آینده به این خواهم پرداخت اینجا هدفم ارزش گذاری و نمره دادن به این دو معقوله یعنی شایسته سالاری و مردم سالاری نیست و اینکه کدومش خوبه کدومش خوب نیست کدومش چه ایرادهایی داره و کدومش چه مشکلاتی در تعاریف ایجاد میکنه ولی این رو فعلا داشته باشیم که شهریاری ایرانی بر مردم سالاری نبوده بر پایه شایسته سالاری بوده این شایستگان هستند که باید برای کشور تصمیم بگیرن و رد و فتخ امور رو عهده دار در حالی که پادشاهی های پارلمانی چون نظام است دموکراتیک در اروپا بر پایه رأی همه مردم نه الزامن رأی شایستگان و طبیعتا خوب مردم هم ممکنه گای وقتا تصمیم های درست بگیرن انتخاب درست داشته باشن گای وقتا گزینش های نادرست داشته باشن در حال این تفاوت امده رو فعلا لحاظ کنیم برای تفاوت چشمگیری از تفاوت‌های میان شهریاری ایرانی و پادشاهی پارلمانی و دومی دو تا مفهوم خیر همگانی در برابر اراده عمومی است شهریاری ایرانی بر پایه خیر همگانی است و پادشاهی پارلمانی اروپایی بر پایه اراده عمومی شهریاری ایرانی بر پایه خیر همگانی یعنی اینکه نهاد دولت، نهاد شهریاری، شهریار، پادشاه باید بگوشد تصمیمات و برنامه خیر همگان رو لحاظ کنه اون چیزی که به صلاح کشوره، به صلاح مردم کشوره، به صلاح نسخ آینده است و حتی به صلاح زیست بوم و شرایط زیست حتی غیر انسان در ایران زمینه خیر همگانی بحث گسترده ای است که در جای دیگری بهش پرداخته بودم در کتاب خودم پیش در اندیش پیش درآمدی بر اندیشه سیاسی را شعریام مفصلا کوشیدم که بهش بپردازم ولی در اینجا همین رو کافی که عنوان کنم که خیر همگانی الزاماً بر پایه انتخابات اکثریت و گزینش اکثریت نیست بلکه نتیجه کار و پیامدش مهمه یعنی اینکه که شهریار یا دستگاه دولت چگونه برامده و به قدرت رسیده اهمیت دوم رو داره اهمیت دخوست این است که داره چه واسه مردم میکنه و کشور رو داره چگونه تدبیر میکنه اینجا مسئله خیر همگانی مطرحه و شهریاری ایرانی بر این پایه استوار میشه در حالی که پادشای پالومانی بر پایه اراده عمومیست یعنی انتخاباتی در کشور میشه مردم میایند و رعی میدن و پارلمانی تشکیل میشه وزیری در اونجا تعییم میشه از سوی پارلومان یا به طور مستقیم از سوی مردم بستگی به حالا شکل حکومت داره و بعد در اونجا اینها میایند و برنامه ریزی میکنند اراده عموم یا اون اکثریت حالا 52 درصد یا 90 درصدش مهم نیست مهم نیست که یه اکثریت میان تصمیم می و بر اساس اون یه حیط رهبری برای کشور تاییم می و نخست وزیر و اونها میان و کشور رو راه می برن. فارق از این که خروجی یا نتیجه نظامی که بر پایه اراده اومیس چیست ممکنه نتیجه, نتیجه خوبی باشه، ممکنه پیامدش پیامد پرباری نباشه و گرفتاری بیشتری برای کشور ایجاد کنه نظام پادشاهی پارلمانی بر پایه اون اراده عمومی سوار میشه و در حقیقت خودش استوار میکنه این مورد یعنی تفاوت شهریاری ایرانی که بر پایه خیر همگانی در حقیقت سمت و سو میگیره در حالی که پادشاهی پارلمانی اروپایی بر پایه اراده عمومی استوار میشه تفاوت دیگر دو نظام پادشاهی پارلمانی و شهریاری ایرانی هستند. کوشیدم در این حدود 30 دقیقه به تفاوت‌های این سنن نظام یعنی شهریاری ایرانی، سلطنت اسلامی و پادشاهی پارلمانی اروپایی بپردازم. بحث خیلی مفصلتر از این است و جستار می‌تواند خیلی خیلی طول بکشه با توجه منابع و اسنادی که در اختیار میشه چندین ساعت در گفته گفتگو کرد باز هم برخی از این مباعث رو که بازنشانی میکوشم تو بقیه برنامه ها بهش بپردازم ولی اینهایی که نسبتا فهرسوار بهشون پرداختم و اشاره کردم و فکر میکنم پیش درامد نسبتاً خوبی بود برای همینهانی که علاقه مندن تفاوت های این سه نظام رو بشناسند و اینها رو با هم و در هم ادغام ازشون یاد نکنن و به درستی تفاوتهای بارز اینها رو در گفتار و نوشتارشون رعایت کنند یک کلیپ کوتاه میبینیم و بعدش ام. یک در حقیقت ترانه یا سرود بسیار زیبایی که جناب امیر صادقی از فرزندان به حق شاهنامه سرودن و برای کورش بزرگ و تصاویری که بچه در جنبش رونسانس یا نوزایی ایرانی برید سرود سروده گذاشتند رو به مدت شیش یا هفت دقیقه با هم تماشا میکنید. من از حضورتون خداحافظی میکنم. بدرود تا فرصت دیگر روز شبتون خوش.